بسم الله علیه و سلم انشاء من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و الله على سیدنا رسول الله و آله و سیبینا وحیینا سنبینا الله في الدائمة و على عباده مجمعین اللهم فرنا جميع المشتغلين ورحمنا ورحمتك يا ارحم الرحیم یعنی لوسی سریع تر مطالب رو که در این کتاب راجع به تدریس آمده و این اشاره‌ای یعنی هم به داشت متعرض بشیم ایشون چطور که ما در بحث قش از مردم گیروانی جوابتون رو نرم کردیم اینا در بحث تدریس میان اصولا دارای دو عنصر بخش تدریس یکی عنصر مادی یکی هم عنصر معنوی مرادشون از اون صور مادی اون چیسته برگرده به واضح شیعی در خارج مثلا فرص که اون خورما بگیر زیر خورمایی بعد بزاره بالاش خورما رو خوب بگذاره یا مثلا رنگ و بوی ظاهری چه بکنه یا مثلا فرص تبلیغات پاسی و انجام بده مثل همین بحثه یکی دیوست اینا رو اصطلاح خودشون اون صور مادی گرفه اون صور معنوی رو هم نیت به حساب فریب و نیرنگ یعنی تنها انصار مادی کافی نیست یک انصار معنوی هم میخواه با این دو انصار به اصطلاح تدلیز انجام میشه این وقتی روز ما این مطلب رو خوندیم که در انصار مادی طرق احتیالی و به طبیعیشون طرق راه های فرید راه های فرید طرق های، یعنی فرید دادن طرق و راه های متعددی داره یکیش هم این بود که افراد مثلا فرسیون خودش بیاد درو بگیم من وزیرم در کتاب بگیم شما خیالیم که وزیره بخریم که دیروز ارز کردیم چون ارز کردیم که در تعریفی که در این دوتا قانون که این مقارنه کرده شده قوان غربی درش داره که خود اون تدلیس انگیزه انسان برای معامله داشه این انگیزه رو مطرح میکنه بعدم ایشون میگه که در تدلیس مجرد مبالغه نیست چون این متعارفه الان خیلی جنساشون تبلیغات میکنن علامت میزنن مثلا میذارن تو تلویزیون میذارن کارهایی که میکنن لذا میگه این مقدار که متعارفه این رو در تدریس حساب نمیکنه بعدم یک نکته ای داره ایشون که بله بحث رابطه تدریس با کذب تا آیا به مجرد دروم تدریس میگه نه بله مجرد کذبیست یک نوع تأکیر روی کذبه یعنی تسبیت کذبه بعد مسئله چون میگم اینا دیگه شرحای قانونی داده و مواد قانونی شده یک صحبت هایمشون در حامش داره به این قسمت ها که طول میکشه و اگه بخواییم این ها رو خیلی طولانی میشه بخش کتمان رو هم که یکی از امور تدریسی بله تأثیر داره در تدلیس درسته. باید توش کتمان باشه بله. البته ایشون میگه خود کتمان فی نفسه خوب دقیق بکنه. میگه خود کتمان فی نفسه تدلیس نیست چرا؟ چون میگه این جز قوانی نیست که انسان باید هر چیزی رو که از مطاق میدونه بگه مثلا فرسون یه پولی گرفته محاد یه وقتی تو ایران تو اون رو به سال شساب نکنه تاریخ 2010 تا 10 سال این بیا تمام خصوصیات اینو باید بگیم مثلا یک ماشین محقق بفروشه دندش اینطوری فلانش این لازم نیست چون لازم نیست وقتی اگر لازم بود که تمام خصوصیات ابراز بشه کتمان مطلقا تدریس میشه اما چون لازم نیست ولی اصل فکتمان لایف لایکون لا هست و اصل انل کتمان لای کن و لی سر متعاقد م زمان به یخدار متعاول ال و آخر به کل امر یعرف و انشه اون لازم نیست که هر چیزی که میره بگیریم. یعنی به عبارت اخرى یک مقدارش و همون ظاهر ف خونه رو حال حالا بگه این دیوار اون گوشه این دیوار ن ن دادهره. اونجا این طور شده اون دری که بالا هست اون داخلش این خورده. یه مقدارش رو میان رو اینها این مقدار لازم نیست. یکی یک نکتهش اینه که اکتفا به ظاهر میشه نکته دوم اینه که اگر امره یکم مهم باشه اون طرف دیگر باید استاد، و خبیر و کارکشته، و خبره بیاره تا تشخیص بده که این مثلا چیزی که الان نفره خرابی داره یا نه در از این مطلب مطلب درستی ها یک مطلب صحیح که مجرد کتمان چرا؟ چون قاعده ای نداریم که در وقت فروش تمام خصوصیات رو متعاقد بریه همچه قاعده ما نداریم بله حتی یک شبه به نفسی ماتهم و معرفته تو و یه مقدار ایشون صحبت میکنه و راجع به این قسمتی که در اینجا هست این. بله بعد ایشون آخرش اینطور بیا منذاله که نرا انال شبیه کلامی که آقای مرهوم آقای ایروانی گفت به چهار اولش کتمان بود ایشون میگه کتمان یکون و تبلیس ازا سوافرت شروط آتیه فیل عمر لذی بقیه مکتومن اولا ان یکونها بالعمر خسیرن مثلا مهمی باشه دوم ان یعرفه المتعاقد الاخر اون طرف دیگه عقل بدونه که این عمر مهمیه ثبوت ان یتعمد کتمهو ان المتعاقد الاول تعمد کتمان داشته باشه چهارم المتعاقدر اول من تاریخ این آخر مثلا آب کشی ریخته اینه کتمان میکنه راه دیگه هم برای شناختش نگرد اون وقت ایشون متعرض مسئله کتمان شده در عقود تعمین به قول خودش بیمه راست میگه این بیشتر بخش کتمان رو و بخش تدریس رو توی امور بیمه دیروز هم عرض کردیم به کار برده میشه که خب واقعا احتمال هم ببینیم البته خیلی بعیده احتمال میدیم اون نکته‌ای رو که دیروز عرض کردیم که حالا باز امروز هم توضیحش این شاءالله بعد از عرضم توضیح قانونیش اینه که این آما رو شخص حساب کردن که اگر شخص خودش تدلیس بکنه نه جنس نه متا این هم تدلیس باشه این به نظر میاد روی بیمه بیشتر بوده دقت بکنید این قسمت شخص رو بیمه بوده چرا مثلا شخص میاندونیم بخواد من بیمه حیات زندگی بکنم کجا دهنیم تو ده مثلا تو ده یعنی اسم همه که میگه دهن از یک غم مخفی میکنه ممکنه توی یه دهی زندگی کنه که اصلا فرسون پرتگاهه مثلا یک دهی زندگی کنه که به خطر در و استولای ما یک دهی زندگی کنه که درش حشرات و موزی زیاده این رو میاد اخواه میکنه اگر این رو بگه بیمش مثلا تنج برابر میشه خطر, خطر آفرینه اینه که ایشون داره که اگر شخص هم کتمان کرد یک نوع تدلیسه این گاهی اوقات توی عبودی که خودش شخص طرف حسابه حساب میشه نه تو عبود معاوضه راسته این مطلب درسته از فرمیه مقدار زیاد در غربی ها مسائل تدلیس و مسائل کتمان توی مسائل بیمه بوده خودش بیمه یه عقلیس که واقعا آفرینه یعنی در مزنه به اصطلاح قرار و اینهاست ادهی هم قبول نمیکنن حتی اصلا کشورایی بعضی از کشورایی که سر نظام اسلامی داشته باشن یک کسی دارم می من مالزی بودم اونام قبول نمی بینره به خاطر قراره بودنش به خاطر جهالت و در قرار و زراره علامه و بالی حالا گفت. فکر می کنید بعد از اون پس یک نکته بر میگرده به گرده به عنصر مادی. و در کتمان این شواهد باید موجود باشه یک نقطهش هم برمیگرده به انصار معنقی که اون نیت گمراهی قصدش این باشه قصدش این باشه که طرف رو گمراه بکنه بله این باید اینطور باشه لذا ایشون یک مقداری هم در این انصار معنقی صحبت میکنه بعضی فرو هم داره که بله الان یعنی قصدش این بوده اینطور نباشه که قصدش نباشه قصدش این بوده که سر طرف مقابل کلا بگذاره پیش نیامده خود بسته. ما اینشالله تعالی شون این بحثم مرحوم هیروانی و دیگران داشتن اینشالله خواهیم گفت که درسته این قصد مؤثر هست اما اگر ما به خیال شدیم این قصد تو تاثیر تأثیر نمیگذاره فرس یک شیری من توی اتاق هم بوده مثلا من توی اتاق توی یخ شربت شیر گوشم یک کار و این شیر خالصیه بعد داداشم فروختش به عنوان شیر خالص بعد من هم که نه بچه اشتباه کرده شیر غیر خالص هم اونجا گذاشته شیر مشک که خودم مصرف کنم من هم دادم یعنی اینجا نیت تذلیل نیست نیت گمراهی نیست من به این قصد نگذارم که به این شیر مشک بفروشم اما عملا شده دیگه حالا شیری که فروخته شده شیر مخلوطه خواهیم گفت ان از نظر ما این در بخش آمون جدید این رو حساب نمیکنن. از نظر فقهی ممکن است اینطوری خوب دقت بکن شیر محدوط با آب رو داده اما به این نصف نداره. کسی دیگه این کاره که اونجا بوده توی کردیم خود انسان انسانخواال شیر محخردود مصرفون که شال نداره که حرام نیست که اونه که حرامه شیر با بانان شیر سالم بفروشه این حرامه که عنوان قششه اما اگر بخواد مصرف کنه خودشو بهمان بگذاره که مشکل باشه که دره باعث هم داره, داره. دقیق فرمودید هست بنابراین دقت بکنید اما من نمیدونم دلیل این نیت به اثر عنصر معنوی که ایشون میگه من حالا گفتم هر حرفی که بکنم تحمل بکنم رو بعدا بحث خودمون بشید یک جای یک یک تعلیق تح... نذیدو حرفای این بحثی که ایشون نیت معنوی عنصر بهنوی رو حساب میکنه این عنصر معنوی در مسئله خیار قبل خیار قشت به نظر ما موثر نیست یعنی اگر طرف بفهمشی مشروبه و تدلیسی شده حق ارجاء این رو داره بله من گناه نکردم اون در جانب تکلیفی موثر میشه اما در جانب وضعی موثر نمیشه اینا چون جانب وضعی و تکلیفی ده چیز هم جزا نکردن لذا این بحث رو من تحبید. بعد این که اِشون نقطه بعدیش از تدلیس هوا دافع و علت تا آغاز انگیزه عقل و قرارداد با تدلیس باشه بعد اینکه قانون اینکه باید تدلیس باید تو انگیزه باشه اِشون یک مقداری متعرض بله متعرض انداز شده باید به صورت انگیزه باشه و غیر انگیزه قبول نمی یه منداری هم ایشون بحثه قانون مثل و اینکه که این قانون مثل دیوریست که اون رفتی به ما نحنفی نداره یه بحث دیگری هم ایشون داره که تدلیس تالیل العقد و تدلیس اصناع تاغاد به کنه یک تدلیسی که در عقد واقع میشه یک تدلیسی که بعد از عقد واقع میشه. ایشون میگه که اونی که مهم محضر باب تدیز و تأثیر میگذاره اون تدیز است که در اصناع عقده اما اگر بعد از عقد شد این تدیز معثر نمیشه خیار نمیاره. این حرفا خوبیه این ما نداشتیم اما چون علمای ما رو مسلم میدونستم متعرض نشدن مثلا بگیشون پنج شیر شیر میفروشه شیرم سالمه وقتی درست هم از میگه این شیر بسفروس هم این رو داشت شیر گستان دارن بعد که مثلا یه بره ظرفی توش آب قاطی می‌کنه 4 کیلو از اون شیر یک چولای آب در حین تسلیمش شیر ترقش نمی‌کنه دقت بکنید در حین که آب عوض قش واقعا شیر سالم می‌روشه وقتی که میخواد 5 کیلو شیر تحویل بده در اون وقت توش آب می‌ریزه از اون شیر کم میکنه توش آب می‌ریزه 5 کیلو به طرف تحویل میده آیا این تدلیس آیا این غشت منشع خیار تدلیس میشه این نمیشه این نمیشه چون اینشان در بحث شروط هم خواهی گفت یک شروعی در حین عرض معتبره اگر هینه عرض تمام بود چیزهایی که در حین تسلیم و تنفیزه اون اما قواعد باب زمانه میاره مثلا ایشون زامنه یک کلوشی رو برداشته زامنه یک کلوشیه به قص یک کلوشی رو کم کرده این در حقیقت زامن یا اگر فرض کنیم این شیر غیر از این کالا یک روش کار شده اصلا ارزش عرفیش هم به اندازه مثلا این 5 شیرو به اندازه مثلا سه کیلیو شیر عرفی ارزش شما مأمور پایینه اون نقص ارزش رو زامنه دقت میکنیم اما اینکه خیار, خیار تدریس داشته باشه خیار تدریس نداره یا به تعبیر همین قانون دربیه ها فساد نسبی ایجاد می‌کنه فساد نسبی در مقابل فساد مطلق مراد خیار ایجاد خیار نمی کنی. یه بحثی هم دیشون در اینجا داره راجع به این قسمت و بعدم یک مقداری راجع به این که تدلیسی که انگیزه عقده به خاطر قشه و یک تدلیسی که به انگیزه نیست و این بحث شده خب از کردم بحث انگیزه رو ما چون مخواییم جداگانه متعرض بشیم در اونجا چلا رو اوشن بشیم بحث دیگری رو داره ایشون راجع به فرق بین تدلیس و قلط فرقش واضحه البته ایشون بله متعرض شده باشه یک نکته دیگری بخش سوم کلیه بحث ما یکی ایشون داره که انصافا هم خیلی خوبه و اون اینکه آیا در تدلیس شرط از متعاقده این بشه احد المتعاقده این بشه یا تدلیس اهمه از غیر متعاقده از سادر شد تدلیسه یعنی یه دفعه من این شیر رو محلوط میکنم این من هستم که خورمای بد رو زیر میگذارم خورمای خوب رو رو میگذارم تدریس میکنم یه دفعه نه من این کار نکردم من شیر عبردم ایش خبر نداشتم شخص دیگری میاد تو این شیر آب میریزه من این کار نکردم شخص دیگری دقت کنیم آیا این آثار تدریس رو داره یعنی میتونه به طرف بگه چون تو تدریز کردی لذا عقل فاسد از فساد نسبی بگه نه من این کار نکردم من این کاری انجام ندادم چون چین چی کاری انجام ندادم مسئولیت این فسادشی به من بر نمیگرده روشن شد طرف مسئله روشنه تو؟ خب نتیجه چپار باز بکنیم نتیجه این است که ایشون برگرده به اون مثل المغرور یک من منقر نیست قاید غرور یعنی به عبارت این اخرا این شخصی که این شیر مشروع رو میگیره برگرده دو فروشنده با این سر به سر بگذاره یا با عنوان زرر برگرده با اون طرف بگه تو این نقص رو ایجاد کردی طرف حسابش اون باشه یه بخشی ایشون مفصل داره که البته از بخش ما خارجه که تناقض نصوص قانون مصری که در قوانین مصری نصوصی که متوازی ماده فلان با ماده فلان ماده بحثی کرده یه بحثی کرده که این در قانون فرانسه این طور بوده این وقتی مثلا ترجمه می‌کنم به قانون عربی به زبان عربی به قانون مصری طورش کرده یه بحثایی است که من دیگه در اینجا بعد چرهای طولانی هم در هم داره در قوانینشون و بعد اسم چند نفر از علمای قانون و خودشون رو چه از قواد علمای قانون غربی و چه مصری در تفسیری که در اینجا دارم اما بعد یک دو صفحه که مشغول اون صحبت شده که رفتی ما نخوزید نداره اما مهمش اینه خوب دقت بکنید اون مهم نکته فندیش رو میخوام ارزو کنم مهمش اینه که ایشون میگه مهما کانه من خلاف فلقانون المصری فلا خلاف فلقانون الفرنسی در قانون فرانسوی اختلاف نیست در قانون مدنی فرانسه این انسا تدریس رو که از غیر صادر شده این مودی بهطل نمی دونه. در قانون فرانسوی این مسلمه. حالا قانون مسی تناقض داره، ابهام داره، نصوصش ابهام داره. فلا خلاف فی القانون الفرنسي ان التدریس يجب ان يكون صادرا من المتعاقد آخر. همون در قانون مدنی فرانسه باید تدریس از شخص دیگری باشه، از اون طرف مقابل باشه. مسائل شما دقت کنید اگه تو باشه در عبارات مرهمی روانی خوندید در تدریس چهار شرطی یکیش این بود که در معاوضه باشه در معامله باشه از شاید مرهمی ایرانی نظرش این بوده شاید اونه که مثلا تدریس جایی است که یکی از طرفین انجام بده اما اگر از خارج معامله شد کسی دیگه گر؟ ابرارت مرهمی است که اگر در غیر معامله بودش حالا نوشته برخورد میخویم مدیرم مهمان میاد. شیر رو با آب مخلوط دارم جلو منون این اشکال نداره که این قشنیست خرید و فروش شیر یا خودم میخوام مصرف بکنم مشکل نداره داره دبت میکنیم که در قامل فرانسی تصریف داره یه شد که خلاف در قامل فرانسی در تدلیس وقت شما نتیجهش این میشه که اگر کسی دیگر شیر رو مخلوط کرد من فروختم من این کارو نکردم کردم نسبت به من معامله باطل نیست معاملت من درست انجام دادم من شیر رو بردم شیر یکیست دیگه این کار کرده اگر اون طرف مقابل بخواد یکیی کسی دیگه باید داره اون رو گیریه نه این که بیاد بگی معامله تو باطله چون این حیله و این تدریفیس و این قش از من واقع نشده این من یک ای نکاری که خیلی لطیفه متر انصافرم نقطه قاملی قشنگیه فقیه قشنگیه وقد نستد ماده کنان اسم ماده رو برده من القانون مدنی الفرنسی سراحتم علا داره و بعد میگه وقت اجمعه اجمعه علاهاده علاهاده رای الفقه و القضا و فی فرانسه. یعنی هم حکم اولیش اینه و هم اگر به دادگاه مراجعه بشه دادگاه اینجا میگه شما هم به نداری نیمسی به این طرف بگی فرست بکن شما به zarar وارد شده مشکل پیدا شده قش شده اما این متعاقد منشأش نیست منشأ شخص دیگری. خیلی لطیف و این. این نکته که در کجا باشه فإذا صدرت تدلیس و من الغير نهول لا يؤثر فی صحت العقد عقد درس و یعلل الفقهاء الفرنسیون ذاله که به انه صدرن تدلیس من الغير چون این غیر آمده بیام بین تدلیس کرده فلا زنبل المتعاقد الآخر اون طرف معامله که گناهی نداره و لی من عرد دیروز روز پیروز زیاده دادیم که چطور مفهوم عدالتو در مسائل به اصطلاح این مسئله پیش در مسئله اقتصاد به اصطلاح و لی سمنال عرد یجزا یا مثلا بله یا به بطنان العقب انظم به اقترف حول غیر گناهی روی که دیگری کرد. ولی المتعاقد المخدو حالا خب این آقا سرش کلا رفته شیر خالص نیست ولی المتعاقد المخدو ان یرجه علال غیر نه به این طرف معامله برگرده با اون کسی که این کار که این ما اصطلاحات در اصطلاح فقه حالا ایشون مخدو نوشته در اصطلاح فقیه ما قاعده و گرور بشینگه اگه شین قاعده غرور رو همینه المغرور يرجى الى منغر کسی که فریب خورده مغرور کسی که فریب خورده گول خورده برگرد به اون کسی که او رو فریب داده المغرور يرجى الى منغر ولی المتعاقد المخدوع يرجى الى الغير الذي صدر منه به بتعويض اما او. و در اینجا باید بگی اینجوری حساب بکنید یعنی به عبارت دیگر اگر بنا بود خیار اگه پسا در عقد میخورد خیار سنایی داشت در بهش میگفتن یا عقد امضا کن یا عقد باطل کن حق طلب پول نداشت اما حالا میگن عقد درسته تو به خاطر زرر داری مراجعه میکنی به کی به اون کسی که این کار کرده اگر اینطور شد دیگه بهش نمیگن تو حق داری معامله رو ابطال بکنی یه خیار نداره اونجا گفتن خیار داره توازای پول نمیتونه سو کنه در این صورت توازای پول میکنه و حق خیار نداره نتیجه شوشن شد شو؟ پس اگر غیر متعاقده این ایجاد تدلیسی کرد ایجاد نشی کرد فرقش اینه اگر بگیم خیار تدلیس هست یعنی حق پس یا افضاد داره حق پول هم نداره اما اگر بگیم برگرده به اون کسی که این کار کرده یعنی حق پسخ و نداره فقط چون میتونه بگیره میاد به اون طرف میگه تو این مال رضایع کردی این ذرن رو وارد کردی تو باید این پول تدارف کنی دیگه حق پسخ و اتدارف کرده چقدر سمتن؟ دیگه حق پسخ نداره اون وقت چی میشه اما اصابه ها منظرن همین که ما از کردیم قاعده لازره یک است که از حساب رسول الله هست و است. در قوانین فرانس هم اینجا برگشتن به قاعده لازره و انشاءالله تعالی توضیحاتش خواهد باقم یکی از معانی قاعده لازره همینه که اون ذره با تدارک بشه به سبب ها و تدلیز به خاطر این فریب تقن للقواعد العامه یعنی با قاعده لازره که به قاعده لازرن بر میگرده تفاوت رو از اون میگیره میگه شما در این شیر همکه کاری شما زامن هستید. اون وقت دقت بکنید آیا فرق میکنه که بخواد تفاوت رو حالا فرصانی تفاوت هم حتی از اون طرف بگیره از تدلیس حساب بکنه یا مثلا خیار غرب داشته باشه خیار تدلیس داشته باشه یا به خاطر زرر اون رو از اون طرف بگیره این البته خیلی عجیبه این معلومه که قانون نیست در فرانسه من چون اطلاع ندارم دقیقاً قصه قانون ایشون میگه فرقش در قوانین فرانسه اینه که اگر انسان متضرر شد و مطالبه حق مطالبه ضرر داشت اما اگر این مطالبه رو نکرد خوب دقت بکنید تا یک سال دو سال نه شده بعد از دو سال مطالبه ضرر کنه تا سی سال اگر تا سی سال مطالبه ضرر نکرد دیگه ثابت میشه این اصلاحات توی زبان فارسی ما م از به قاعده مرور زمان قاد مرور زمان یه قازه سلام در قرار هست تو ایران قبل از اینقلاب و مگذارلان نمیدان ذقیق رو بهزبانفعل آشنه ندارم دقیقت نمیدونم اما توی قوانین مرور زمان ده ساله و اون خلاصیمر قا مر مرور زمان است که ا اگرش شما هفتی بگردن کسی داشتن تا پول ازش میخواستی ده سال گذاشت و چپکی داشتین داشت. مطالبه نکردین هر هتی رو که ده سال مطالبه مطالعبه نتونین خود ثابت میشه این اسلامشن قاعده مرور زمان این قاعده مرور زمان این رو میگم توضیح شدیم تکیلی از اجایب کاری که در قرب هست هلان نمیدونم که که مرورزن کسی مطلعه بگیم من الان داریم قاعده مرورزن بلا ما چه که تاریخ ششمازه نه به طور مطرق مثلا شما از کسی طلب دارید. ش... میدونم اون چون قانون گذاشتن نه شما اگر فرصویم به این که از کسی طلب و از عجوه میگه روایت هم داره این خیلی خنده داره واقعا تحجیب آوره روایت سکونیت از امیر که هر شخصی که داره حقی باشه ده سال چیز نگه هر سال باشه ما روایت هم داریم از روایت سکونی هم حتی روایت سکونی اخیر هست و همون تهدید ده سال خیلی هم عجیبونیم قرب از این روایت گرفته چطور شده ما نمیم فهمم ما خود روایت به ما اصحاب برای نیست اینا هم ثابت نمیشه بر مرزا زمان ثابت نمیشه فتوا برای این نیست اینی که شما رو نگون قبول نکرد چون فتوا برای اما روایت میشه ذاتی ما خودمون روایت مرور زمان رو داریم اما فتوا برش نیست اون وقت در قانون فرانسه چون که ایشون نرم من به دعوای ایشون اعتماد ایشون یک عجیب اینه که ایشون میگه در قواعد فرانسه اگر که وهازی دعوا مصدرها عمل و زار اگر مستره یعنی مستر اون حق شما چون کسی به شما ضرر زده ولات از خود سلقانون الفرنسی الا به موضوعی فلاسی نتنه اگر حقی روی که داریم منشعی ضرری بوده که کسی بهتون زده تا سی سال اگر مطالبه نکردیم پس کسی بوده شیشه شما رو شکنگه تا سی سال مطالبه نکردیم این ثابت میشه کمتر سی سال ثابت نمیشه فهیه منها دلوج اگر مشکل این باشه که در از طرف اون طرف بگه خیرون من دعوا بطلان العقد لت تدلیس اما اگر بخواد بره به دادگاه شکایت بکنه که این عقد به خاطر تدلیس باطله و شکایت نکرد، ایر تس خودها دهی دومدر اش سنوان قانون مرور زمان در این دعوا ده ساله قانون مرور زمان توی ضرری که ناشی میشه از غیر اون سی ساله خیلی خیلی منوش حواظشون جمعه یعنی اینی که بیار ما یک رو تدلیس بدونیم یا درو تدلیس ندونیم تأثیر قانونی داره اگر تدلیس شد تا ده سال اقامه دعوانه کرد حقه ثابت میشه اما اگر تدلیس نبود و ضرر بود تا سی سال حقه ثابت میشه این خیلی زرافت هم. من همیشه از کردم در قانونگزاری حالا فرصمتون تو مجلسینان یک نکته بسیار مهم اون تسانوکات قانونی لازومات و تسانوکاتی و سلخیت هایی که به نظام یعنی وقتی میاد میگه این تدریس نیست این از واقع این باید بیاد بین این دوستان فرق بگذاره خیلی فرق لطیفیه اگر تدریس بود قانون مرور زمانش ده ساله اما اگر عنوان اضرار بود قانون مرون زمان سی ساله اما تا که من تو ذهنمه تو ایران در قبل از میگم پس من فلاکم ما روایت رو خیلی عجیبه همه قانونی که الان زمانه بلزال صحیح هر به این خب سن داره. من رجاله در سن داره. نه، بله، در زمین سه سال در نیست. در تعطیل مگه باشه دست یکی از عجایب به کاریه که این قانون مرور زمانه به ده سال که الان الان ماشینام در تون قانون رسمی اند در کل اروپا مثلا سر به طور رسمی هر حقی که شما داشتروشین تا ده سال مطالبه نکنید ثابت میشه خود به خود ثابت میشه از عجایب اینه که این تو روابط مالیان هم جز به کاریه فطفوه نیست برایش خطوه اصحاب اینه که اگه انسان وا مطالبهی نکرد بالا 20 سال 30 سال طول بکشه ثابت میشه این مطلبی که ایشون در عمل زار گفته الان تو ذهن منم نبود به نقلیشون میجام که در عمل زار تا 30 سال در تدریس تا اما اینکه ما ماکا یک مقداری از قوانین قرضی رو هم در مسئله تدریس دیدیم و آشنا شدیم با این مطلب البته ما بحث تدریس رو اگه اولین که تشریح می در حرف چه تدریس و جاریه مرحوم شیخ در اونجا متعرض شد ما اونجا متعرض شدیم تدریس و حالا بعد از این بحث ها و تدلیس ذاتاً غیر از مسئله قشه اما خب با همدیگم میخوارم تدلیس به اسطلاح خود شلمه دلسته دلست معنی تاریخیه، مثل قسط تدلیس عبارت از این است که انسان در تاریکی کسی رو راه ببره اونو در خفا و تاریکی نگه بذاره کتمان نیست تاریک کردنه یعنی فضا رو برطرف و ولذا حقیقت تدلیس این است که بیاد یک شکل رو مثلا پرس کنی. یک انسانی که صورتش آبلگونه مثل این چیزایی هست که وقتی تلویزیونش میگن گریم می‌خواد یک جوری گریمش رو کنه که این آدم سالمی دیده بشه تدریس حقیقت تدریس اینه مثلا کنیزه که یه محاسب یا مثلا کسی رو م... حیوان می محاسب این مثلا یک دونه آمپول و از حیواناتی که مثلا خیلی بانشات میشن مثل دوپینکی که هست یه حالت نشات پیدا میکنه یه روز روز بعد مثلا از مثل همون شات مخرات و این تدلیز مصداقه که بارزش در روایات ما و روایت آمنا آمده که از مصداقهاش وصل شعره که موی خودش رو به موی مثلا دیگری می و ما این مسئله وصل شعر رو توضیح بسیار مفصلی دادیم و ریشای تاریشی شوید تاریشی یه اینجا نیست تدلیز حقیقتش اونه اما غشت خودش ممزوجتردنه یه غشت این است که انسان اون خالص خالص رو نشون نده در مقابل نصه یه دفعه در حبات هم داره از نص حلعه علمت المسلمی یا نصیحه اون نصح عبارت از اون رو انسان و اون خالص نشون بده غشت اونی که نه اون ظاهر نشون بده باطن نشون نده مثل اینکه که فرص که مثلا زیر گندم گندوم بعد باشه زیر خورما خورمای بند و مسئله غلط مسئله دیگریه باز و مسئله اکرا و باز با مسئله غرب مسئله غرب عباره مثل ایشون گفت عدم تاعدد ما بین متعاوزین ما بین عوزین اون باز مسئله دیگریه مسئله ای خروج از طبیعت اصلیشه اگر خروج پیدا بکنه از طبیعت اصلی خودش اون رو اصطلاحا اینا هر کدوم داره یه ضوابط خاص خودش هستن و خصوص خودش که حالا یه هاشه هاش میشه روجی به مسئله قش، البته قش با تدلیس جامعه مشترک هم داره چون فرض وقتی قشتر تدلیس هم میکنه، اما ممکنه تدلیس باشه اما جدی قش نباشه اینو خیلی صورت حال صورتو خیلی قشنگ نشون می‌ده بعضی از دواها به کار ولاره یا مثلا لنس تو چشمش بذاری دو دیگه بده این مسئله تدلیس یک مسئله متعارفی بوده و اونجا هم قیل‌های زده شد مثلا زن اگر خودش رو آرایش بکنه که از اون شکل تاثیرش در دل داره برای شوهرش باشه تو خونه‌اش باشه جلون مهمونا باشه این حرمت نداره تو معامله‌ش مشکل داره یا توی مسئله ازدواج مشکل داره الا قیل که کرد مواردی که در این جهت میاد وقت مسئله قش ظاهرش به حسب ارتكازات عرفی عبارات از یک نوع تدلیسه که این میشود بنسبتش اباظ حدیث عن یعنی قشق ابایت از مخلوط کردن به هیچی که انسان تشخیص نده یعنی که یاد مثلا همه اینطور خوبه و همینطوری که گفته شده انصافا قش ممکنه تاثیر در رضا داشته باشه ممکنه قش تاثیر در مسئله خود اقدم داشته باشه اینطور نیست در اصل رضا باشه و این دو تا نقطه و ظاهرا همینطور که مرحوم استاد فرمودن قشق حرامه ولیک در فرمات قشت کردم فهم قش قشت به نفسه حرام نیست ای روانی مذبه اناوین دیگر حرامه از کنم که اون که ما الان به ذهنمون میاد ظاهرا محرمات شرعی دو جوره یک از محرمات فی نفسه هست یعنی بسا جنبه فردیش مراعات میشه مثل شورب خرم مثل ترک نماز و حتی اگر در جنبه فردیش حتی اگر قائل شدیم که قوام به غیر داره اسه دروغ این بحث ایشا که بحث کذب رو مرحوم شیخ داره و مرحوم صاحب عروه بحث روزه داره که دروغ مفطره حالا فرض کنه بحث اینطور می‌کنه که اكيد در اتاق هیچ کسی نیست هیچ کس گوش نمی‌ده اصلا کلامی کاری نمی‌کنه یه دروغ میگه، علی الله علی اما کسی گوش نمیده. آیا این کذب محرم هست هستن نه هیچ تأثیری نداره کسی خلاف واقع کسی نیست که واقع خلاف واقع برای خودش بلند یه دروغی میگه. اون بحث مروسی در قرده در حال روزه توی اتاق تنهایی هیچ کس نیست هیچ کس امن نمی‌شنه زبسان میشه یک دروغ به الله و رسول میگه آره این مفتر هست صارت چون این خوبه هست که دروغ ولو گناه فردی است اما قوامش این است که تأثیر گذار با تاثیر بگذاره یعنی یک کسی بشنوه اما اگه کسی نشه انسان بر خودش بگه اون این جهت که چون دروغ یکی از صفات و لفظ آرز میشه لفظم یک اجتماعی است قدیده فردی نیست لحظ مثل شراب خوردن نیست در هر حال اون بحث اینه که اگر هیچ مخاطبی نبود آیا این حرام یا نمفتر حالت انصافا شبه داره انصافا خالی از شبه نیست برای از فرمه استالاکیست حالا من وارد این بحث نشم اما یک نکته دیگر باید گفت با اون که ممکن است بعضی از گراه ها اصلا در حیعب اجتماعی پیدا میشه اگر دقت بکنید ما وقتی عبارات همین کتاب رو کنید نظر به این بود وقتی تو مسئله قبل ایشون پیش ایشون آمد گفت که قبل بیشتر به فرهنگ اجتماعی میخوره اگر خیلی اساس فردی باشیم قبل مؤثر نیست اما اگر دارم که ادالت اجتماعی رو مراقب بکنیم، قبل مؤثر کندیم عبارات ایشون این من به نظر من تحلیل نکتهش اینه که اصولاً بعضی از امور طبیعتش طبیعت اجتماعیست چون من عرض کردم چرا رم این مطلب که که تایید بودن اساط الفرد که ما بگیم جامعه تشکیل شده از افراد هیئت اجتماعی عبر وهمیه تقیید بکنم این اساس آمد گفت قرم باطل است. چون چرا؟ چون گفت ما اگر اساط الفرد بگیم جامعه افراد این فرد مسالشش میخواد، اون آقا مسالشش میخواد، اون آقا مسالشش میخواد. ما بیانگو اقدام. میگیم هیئتیشش اجتماعی ای باطل. ما چیزی نمی‌هیئتیش او نداریم. من مسئله من ای کتابی هزار تونه یا ده هزار تونه می‌فرستم. مسئله من. بله، توی جامعه برای جامعه خوب نیست. لکه ما جامعه رو قبول نمی‌کنیم. جامعه امروز بهم ما میگیم خبر مقابل با من راضی که از خبر نداریم. شوازی بود. این طرف هم دنبال این بود که ایک آدم خیمگ پیدا کرد کتاب رو در ازان سات باشه آلا آره این پیدا کرد که اون رو, رو پس این هم راضی اون هم راضی و این سود برده ما کاری به حیات اجتماعی نداریم. اصلا میار ما در قوانین و ولی از همین کتاب خوندیم که در جور جوامه مثل قرن فساد نمیاره خیار نمیاره اینو رو خوندید ایشون نیمازه خوب تحلیل بکنه تحلیل دردیگترش اینه ما در تحلیلیشون نوشته مطلب بد نیست این نکه به نظر ما اینه که آیا هیئت اجتماعی یک واقعیتی داره خود هیئت اجتماعی یا نه حییت اجتماعی یک امر وهمیه اگر هیئت اجتماعی یک واقعیتی داشت خود این هیئت اجتماعی معروض حکم میشه موضوع حکم میشه میگیم این هیئت اجتماعی سالمه این هیئت اجتماعی مریضه این هیئت اجتماعی صحیحه این هیئت اش... اجتماعی باطله اما اگر بنا هستی هیئت اجتماعی وهمی باشه دیگه وصفش نمیکنیم صحیح یا نه بنصری اینه که ما یه هیئت اجتماعی مثل دیواره دیوار این نیست که فقط آجرهایی که می‌گذاریم سالم باشه، سیمانی هم که می‌ریزیم سالم باشه. ممکن است اجزای دیوار همه سالم باشن، اما دیوار چکه باشه، یا آجر یا آجر عقب. یعنی بحث اینه که در هیئت اجتماعی خود هیئت اجتماعی موضوع میشه، خوب دقت بکنید. خود این هیئت اجتماعی موضوعه ممکن است بد باشن اما دیوار صافه ممکن است خوب باشن اما دیوار چجيبه. یک آورد جلو به یک ما بخوایم اینو بگیم جامعه بشه این که یعنی انسان مدنیون به طور مجرد این نیست که افراد انسان مثلا 20 تا 30 تا 40 تا یکجا جمع میشن خب مرکم همینطوره مرکم مدنیون به طور ظاهرا مراد از مدنیون به طور یعنی انسان در اجتماع زندگی میکنه اجتماع رو هم رشد میده و برای اجتماع هم زابطه تعیین میکنه و تعین این زابطه قریبی است مثل گوچه و زبوره اصلا تعین این زابطه اختیاریه سر میکنه هر روز مثلا ساختمان رو زیباتر بسازه شهر مثلا شهر شهر مجرد پنجتا خانه بیستا خانه تا خانه نیست یک رابطه هم باید بین این خانه ها باشه خیابانی که ایجاد میشه یه خانه کجا باشه میکنی؟ لذا بعیدی نیست و درستش هم همین طوره صحیح هم همین طوره. نه این این حرکه که ایشون بحث ادالت رو پیش بشید. ما اون ادالت دقیق بکنه ادالت معروضش و موضوعش حیعت اجتماعیه ما اگر قبول کردیم غیر از افراد و مفردازی که تشکیل دهنده غیر از اینکه هزار تا و خونه باید اینجا باشه این هزارها ها باید نه داشته باشن معین باشن، مرنطن باشن، خیابان تشکیر بدن، پناک میذارن یعنی خود هیئت اجتماعی هم یک واقعیتیه خوب در قصب کنیم یکی از واقعی، یکی از آثاری که برین هیئت اجتماعی بار میشه ادالتی، ادالت در این هیئت اجتماعی باید میشه ایشون برداشه ادالت رو بازه. فقط ادالت نه نکته این نیست نکته این است غیر از اینکه که افراد متعاقده این هستن این هیئت اجتماعی معاملات هم باید انزواد پیدا بکنه خود هیئت اجتماعی که ایتون روی تحریکت به ادالت میکنه. پس بیاید ما قبول بکنیم که هیئت اجتماعی هم مثل مفردات موضوع میشه چون ما تو حالا تو بحثایی ما این کمتر شده خود هیئت اجتماعی حکم پیدا میکنه اگر اون حکم بار نشد فاسد میشه اگر اون حکم اسیان شد گناه میشه این اگر ها تویی تحلیل می به پس مرمومی روانی ذهنیت مرمومی روانی ذهنیت فردگرایی بوده میاد میگه قش چیزی نیست این دروغه کدوم قسمت قش هرانه این که جنس رو اگرده اینجا بذاشته این که انشای معامله کرده یکی که حساب کرد نه بگیر اصلا قش موضوعش مثل شرب خبر نیست گناهی از قبیل شرب خبر نیست قشت جد گناه ها نیست که موضوع <تصفح> اجتماعی است. جامعه هست. ده بکنونه چی بخون بگم؟ مثل ادارتی که ایشون مطرح کرد، یعنی نکته اساسی اینه خب در قطع چون خیلی چونه خیلی آساطالان نگفتیم. اصلا تحلیل اساسی برای کلماتی ایشان این است. ایشون برداشتیم گفته ما ادارت یا مکتب فرد اساس فرد داشته باشیم یا ادارت اجتماعی. ما تو اقتصاد اگه اساتید فرض رو بگشیم درسته من درد سود, سود بردم یه سه ارداتن 10 ارداتو بردم سود بردم طرفم که راضی بوده از تیم تو علمای تسون میگن درسته میگه هم میمون درسته واجب هم هست و هم بشه واجب هم نشده تحلیل ایشان اینه میگه اما از وقتی که دین آمد تو اقتصاد تو اروپا مسیحیت که آمد ادالت رو آورد تو اقتصاد ادالت اقتصاد میکنه کتاب هزار تایی به 10000 تان فروختنش، این عدالت آمده. مگه من عقیزمینه اینه که این تحلیلیشان کافی نیست. تحلیل دقیق اینه. اون زیر بنا اینه. آیا برای هیئت اجتماعی یک موضوعیت قائل بشیم؟ خود هیئتش یه چیزیه. خود این هیئت اجتماعی. ما برای هیئت اجتماعی یک موضوعیت قائل بشیم که خوب دقت بکنیم که اگر اون هیئت اون ترتیب نبود این مثلا بگیم دیوار کجه بگیم تو این جامعه ادالت نیست. این ادانه عارض بر اون هیئت اجتماعی من نظرم اینه که شاید از ادله قش اینو در بیاریم این خوب دقت بکنید اینه که آخوری میفرما حرمت قش به اجدار نیست استاد ما ایروانی گفته این حرمت نداره قش چیزای دیگه حرامه ایروانی یکی که حساب کرد خود دی این منشه کجا شد منشه اینه که مرحوم ایروانی قش رو آورده رو حرمت تروی گرفته مثل که مثل ترکه صلاحت ده صد حرامه دیگه تل آی خون به ارتکاز اشتباه ارتکاز فکری میگه خب این حرامه دیگه روایت دا هم داره دیگه معلومه شیخ انصاری اصلا بحث نکنه لو داخل از القش این بحثی باشه گفت خب من معتقدم که نکته فنی و اساسی که عبارات این قانون فرانسه و غیرین ها روشن شد این در باید این نقطه نگاه بکنیم که هیئت اجتماعی یک واقعیتی داره این واقعیت هم حکم تکلیفی میگیره، خوب بخاطر حکم وضعی هم میگیره. که این به بهیاتی اجتماعی میخوره چطور مثلا فرض کن بول یک حکمی داره؟ خود این هیئت اجتماعی شما اگر این هیئت اجتماعی رو به هم زدی، گناه کردی، خود گناهی. اون هیئت اجتماعی رو به هم زدی، این خودش گناه مثلا ایشون در بی گفته ادالت. دیدی تو روایات ما از پیغمبر اکرم نقل شده تپن المضترسنه صحبتو اگر ما آمدیم بحث رو روی عدل گرفتیم میشه ادالت میگه عدالت میگه شما جنس هزارتونی 4 تا هزار تا فروختی 2000 تا مثلا 4 تا 10 هزار تا فروختی عدالت نیست پیغمبر هم چی میگه نمیگه عدالت میگه گناه حرامه بگذشت کسی که آمده به تو اعتماد کرده میدونی این جنسی مزید شدات منه سر او رو این صحبه یعنی حیات اجتماعی موثر میشه تو گناه و موثر میشه تو حکم وضعی من به نظر من میاد که علمای ما بحث و تحاله اینجوری مطرح نکن و لذا طبق این تصورات اگه یادتون باشه ما در وقتی که مطفون روایت رو چندین چندی از روایت رو خوندیم گفتم به نظرها مثل صحیح ترش منغشنا فلیث مننا این فلیث مننا را هم اونجا رو گردیم کسی که بیاد در جامعه خوب در قطع کنیم منغشنا بعضی از متونش این بود منقشه فلیسه به مسلمه. بعضی متونش این بود منقشه فلیسه منلی در سیه مسلم بود. خوندی می متون رو می خونم میگید به نظر ما بهترین متنش من تو روابط سیه ما آمده. منقشه یا منقشنا فلیسه مننا. این منلا اشاره به حیات اجتماعیه. این که اول خودی من بلبکسان خب نمی شه می مطلب این کار قشت ای که قشت تو جنسه حرامه. ایراد می گیرن نقش شما منشه اشکال کجاشو مرمون ای روانی آمد قشت رو مثل شربه هم امر فرمی گرفت این آرزه برچی شده آیا من شیر مشروع رو بیارم؟ این قشت شیر رو با آب باتی بکنم این حرامه شیر رو با آب باتی کردم آوردن تو کار گذاشتم این حرامه اجراع عقده بی کردم این حرامه یکی یکی اینجوری حساب کرد کدوم یکی حرامه نه شیخنه اونی که حرامه جامعه رو به هم زدن حرامه اون هیئت اجتماعی رو خراب کردن حرامه چون اگر شما جنس بد فروختی طبیعت بشر، چون از که مدنیت انسان اجتماع نیست شما و فروختی فردا میری پارچه بخار اون پارچه بد بهتون میشوشه یعنی اگر قش آمد چون طبیعت جامعه بشری تأثیر و تأثیره اگر شما قش رو اوردید یکی دیگه هم قش می‌کنه و ولی روات من روایت ما آمد من قشه قش ماله این به نظر من اشاره به همین نحوهاته که قش خودش به همون که آیه خوبی اما خودت رو تحلیل بده آیه خوبی خیلی بزرگواره اینو اشون میگه خب روایات هر چه آنسالون بوده خلاف حرمت قش یعنی ارتکازشون این بود که اینجوری بحث شده در حرامه معلومه ایرانون از بود کجای شرامه یکی کرده گفته ناقش که حساب کرد گفت نه آگاهش میام نیست که قصاصش به خاطر مثلا اون قصورش به خاطر حرامه اون قصورش به خاطر فلان حرامه اما خود عنوان قشین نفسه عنوان نداره وقت تحلیل روشن شد ما به نظر ما این تحلیل ما با طابقت با روایات اصلا این فرمود منغش شناس لیس مننا مننا مننا یعنی این آمده به هیئت اجتماعی زرر زده. اون تا که ایشون تو هیئت اجتماعی تو آمر کردیم، برای ادالت رو. اون یکی از ضرر ای است که به هیئت اجتماعی زده میشه. یکی از زررها اونه. یکی از زررهاهایی که به هیئت اجتماعی زده میشه خشیه و زب پیغمبر فرمود اگر مشوق کرد خود خسی اشکال خورشکانه. شیر و آب مشوق کردی. شما تو خونه لآمدی مثلا خورما، جلم مثلا فرض کن شما گندم فرض در عوض شما انگوره برد. انگوره بده پای کوچ انگوره خوب بالا که حرام نیست که چی شده اما اینکه این کار کردی چه جامعه تو روابط اجتماعی خوب دقت بکنید توی جامعه که جوری هدیه به کسی دادی گفت اصل پیشکش دادنش نمی‌شناخت حالا که جوان یا پیر دیگه اصل پیشکش هدیه دادی دیگه من محاسبه گفتن این دیگه خوب بود بالاش بد بود اما اگر شما دید تعاقود دارید، نه توی تعاقود، رابطه اجتماعی تعاقود؟ یک رابطه اجتماعی این رابطه اجتماعی خوب در این خودش موضوعیت داره، خود رابطه اجتماعی این رابطه اجتماعی هم موضوع برای افکان و تکلیفی میشه هم موضوع برای افکان وزیگ میشه موضوع برای افکان و تکلیفی مثلا ایک رو قرد بچه امر میشه اومد، اما پیکان برای کم هکم تکلیفی شما از کامل مصرف کرد سخت رو. حرامه تو این کار رو بکنی. این که یک نفر به تو اعتراض بکنه، سر و صدف بگذاری کلا جایی که میاد روابط اجتماعی، پس مشکل کار تا حالا اینجا این بود. و این یک نکته بسیار لطیفی در فیت که آمیش رو در نظر بگیرن. که گالی خود اون هیئت اجتماعی موضوع هست برای حق. چه حکم تکلیفی، چه حکم وضعی. و لذا چون ما روی شیر واقع شده خوب دقت بکنید در اینجا دلحاز اینکه که اجتماعی که عبارت تعاقد باشه این هیئت اجتماعی رو خراب کرد به جای شیر مشروب به تحمیل داد این موضوع اون که برای برمه این حرام ولکه شو اون وقت از اون طرف کن تا آقوده رابطه اجتماعی این محشه میشه طبقه هم محازم از این گفتی این اصلا دارم. اونجا از اون باطله همطور که شیف فرمده این محشه این میشه که خیار خیار پیدا بشه همون خیار زهر بین نفس و امزام و یک نقطه دیگری که چون دیگه بلیه بحثاش این اون بحث روناست من متعرض نمیشم اببته ما معتقدیم وضع تمدن و وضع فرهن و وضع تمدن در تبدل خیار یا عدم خیار هم تأثیر میکنه که آقای خویه فر اینجا گفتن تحلیلش مثلا سابقا میگونن یک کتابی رو به شما فروخ معید در شما خیار عید دارید این مال سابقه که کتاب ها کتی بودن یا کتاب خصوصی ها داشت اما آگه به شما یک این چهار مثلا مقاسه میگه یک جدش چون سخهی سفید داره عیب داره میگه آقا بیاد ماضحه تفاوی شده میگید نه آقا ما به تفاوی دیم یه دوله سالم بتونیم آقا یا در اونجا خیار عیب داره نداره نه این وضعه هم از دوم عرض شده از پیشرفت علمیه وضعه پیشرفت خیار دیم یه خیار عیب نداره این اشتباه داشته مثلا در همین مشهور اگر شیر مشروط و این شیر خورفته مشروط داره آمد و عنوان نه عنوان شیر خارجی باشه دیگه شیر خورفته مشروط داره آمد اصلا خیار هم نداره ایشون برو شیر سالو میتند خوب هم شیر خورفته اون شیر خوبیشون درمیه اصلا این دقت می‌دونید یعنی این رو خوب دقت بکنه که ما می‌گیم خیار داره در صورتی که به روی عین واقع بشه و خصوصیات و الا ممکن است در یک چیزی در یک زمان خیاره عیب باشه در زمانی که شارع نباشه این مال تبدل حق بخال به لحاظ فرهنگ و تمدن این پس با این بیاناتی که اینجا عرض شد روشن این چی ایشون داره نیت تزلیل و نیت اشتباه این, این هم شد این نیت تزلیل اگر که طرف نیت تزلیل نداشت نیت خرید نداشت نیت گمراه کردن نداشت در حکم تقریفی تأثیر میگذاره اما تو حکم بعضی تأثیر نمیگذاره اما این اینکه پش با در تعهد طرفین باشه انصافا حرف بدی نیست قاضی هم همین اعتراض میکنه انصافاً حرف بدی نیست بگردیم به قاضی ضرر البته ایشون بعد نفاذه کرده من گردیم تمام حرف ایشون نفندن. حرف بدی نیست میگیم یه محروبه که الا و این مربوط به عالم تعاقد نیست در اینجا این قضیه که اتفاق افتاده یه جنبه فردی داره یه کریبه فردیه این که طرف نبوده یعنی اون زباقی که ما ارز کردیم کاملا روشن میشه پس غشت حرامه به عنوان خلافاً لما حقیقی روانی لکن موضوعش هیئت اجتماعی این رو باش کرد به خبر اشتباه نگیریم این هم نیست و این که هیئت اجتماعی خودش یک واقعیتیه خودش نیشه موضوع احکام بشه این نیست که حیعت اجتماعی اساس و فرد بیر مهمه اجتماعی وهمی باشه به تعبیر ایشان یکی از نکاتی که در جامعه باشه خیلی از در عقد در عقد باید ادالت باشه تاادل باشه تناسب باشه اگر کسی آمد در جامعه تناسب رو به هم زد اون حیعت اجتماعی به هم میخوره دزدی و فساد و فحشا و الاخره تمام ها دنبال اون میاد همه میرن دنبال این که جنسی که مثلا 1000 تومانی به 5000 تومن بپوشن این هیئت اجتماعی به هم میخورد دقت بکنید بحث تعادل ما بین تمام و نیست البته صحیح مصمن حالا آره ما مصمن میگیم قال از مشهور تعادل بین ثمن و نیست این موزر به اون تعادل به اون هیئت اجتماعی و هیئت اجتماعی هم واقعیت داره این واقعیتش اینقدر قویه که حکم هم درست میکنه. نه فقط حکم وضعگی درست بکنه. اگر کسی حیات اجتماعی رو به هم ز گناهم کرده من قشتنا فلیس مننا این از جامعه به جامعه اسلامی ضر بزده این بحث شده حرفی دق برید و درست هم هم. چون اگر قش آمد یا های بقییان یاد میگیرن این نظام جامعه رو به هم می بسه ادالتم که ایشون میگه تنها یعنی این نکته اساسی ادالت یک قرع مطلب ده نکته اساسیش که هیئت اجتماعی واقعیت داره ادالتم تو این هیئت اجتماعی وارد میشه عدالت ترویج هم داده عدالت شما هم دارید دقیقاً در بس باشه در بحث بحث در این فروع خصوصی لازم شده در میاد و صلی الله علیه